هزار افسان برنامی از گروه جوان و فرهنگ نام خدا مرگانی محرافرین سلام و درود بر شما همراهان گرامی زبان افسانه ها زبان مردم کوچ و بازاره زبانی ساده و روایتی پر رمز و راز و سرشار از حکمت و اندرز. در برامی این هفته هزار افسان افثانی که ایرانی سه خواهر رو براتون میکنم کنم برگرفته از کتاب فسون فسانه اثر فرزانه سجادپور امیدوارم از شنیدن این افسانه ایرانی لذت ببرید و ساعتی رو فارغ از دغدغه‌های روزمره و حیاهوی درون به آرامش سپری کنید. در زمانهای قدیم مردی بود که از این دنیای فانی سه تا دختر داشت که مادرشون مرده بود و مرد خونه بعد از فوت همسرش یه زن دیگه اختیار کرده بود و این زن به اندازهای در حق این دخترهای بیچاره بدین کرد که انگار پدرش رو کشته بوده این خانواده از نظر مال دنیا هم به قطری فقیر بودن که به قول قدیمی‌ها شبشون می اومد و شامشون نمیومد. روزها با همه سختیاش میگذشت و دخترا روز به روز بزرگ و بزرگتر میشدن. از اونجایی که گفتن خداوند هیچ وقت بندهای خودش رو تنها نمیذاره، لطف و رحمت خدا شامل حال این بیچاره ها شد. چطور؟ خب الان براتون میگم. بله، یه روز غروب دختر کوچک خانواده رفت تا خاک سرهای تنور رو جارو کنه وقتی که بالای تنور رسید یه دفعه متوجه شد پنج تا نون داغ و برشته توی تنوره فورا رفت و به زن پدرش و خوهراش گفت بیاین بیاین بیاین ببین پنج تا نون برشته توی تنوره زن پدر خش گفت نون کجا بود دختری که دروغگو دختر گفت باور کنیم راست میگم نونا خیلی هم داغ و تازن باز زن پدرش قبول نکرد و هرچی از دهنش در اومد بهش گفت اما دختر اونقدر حرف خودش رو تکرار کرد تا بالاخره زن پدرش و خواهرش همگی را افتادن و رفتن سراغ تنو وقتی به بالای تنو رسیدن دیدن که بله دختر بیچاره راست گفته و پنج تا نون داغ و برشته توی تنوره. زنبهدرش با دستپاچگی نونا رو از تنور بیرون آورد و خلاصه اون شب یه نون سیر خوردن و خابیدن. فردای اون روز هم دختر کوچیک خانواده برای جارو کردن خاک سرهای تنور رفت. دید که باز هم پنج تا نون برشته تازه توی تنوره. با خوشحالی اونا رو از تنور بیرون آورد و اون شب هم با شکم سیر به رخت خواب رفتن. خلاصه دختر هر روز میرفت رفت تنور و پنج تا نون برشته رو بر می و میآورد خونه و همه دوره هم می‌خوردند، تا اینکه که یه شب وقتی همه یه دخترها توی خواب بودن زن به شوهرش گفت تا دخترها خوابند بذار یه چیزی بهت بگم و بعد آرون گفت ما هر روز پنج تا نون داریم اگه این دخترها نباشن میتونیم یکی دوتا از این نونا رو بفروشیم و پول اون رو برا پس انداز کنیم این دخترها نونخور اضافه اینگه اینا رو بند نکن اینجا مرد با اصابانیت گفت این چه اینجا خونه اوناست کجا برن؟ زن غرولون کنن گفت پس من چی؟ من چی خونه من نیست؟ مگه این دختران میذارن آب خوش از گلوی من پایین بره؟ مرد گفت آخه چی کار کنم؟ من که نمیتونم دخترمو از خونه بیرون کنم دلم رازی نمیشه ببین بعد از عمری خداوند به ما نظری انداخته و هر روز رزق و روزیمون میرسه دیگه گرسنه نمیمونیم حالا بیامو ناشکری کنم و پاره های ترمو از خونه بندازم بیرون نه نه نه این کار درستی نیست به خدا زن این حرفو نزن زن با عصبانیت گفت من این حرفو سبم نمیشه از فردا ببد یا جای من تو این خونه است یا جای این دخترای بر رو و گفت. به بعد در مورد دخترای بیچار اونقدر دروغ سرهم کرد و گفت که مرد بالاخره راضی شد فردا دخترش رو به جنگل ببره و یه جوری اونا رو رها کنه فردای اون روز پدر به دختراش گفت زود باشین، زود باشین باید بریم جنگل هیزوم جمع کنیم اصرم از درخت های جنگلی میوه میچینیم و برمیگردیم و ساعتی بعد پدر به اتفاق سه دخترش به طرف جنگل به راه افتادن. اونا تا غروب راه رفتن دختر کوچیک که میترسید به پدرش گفت پدر، این همه توی راه هیزوم بود چرا راه خودمونو دور میکنیم؟ کجا میخواییم بریم پدر گفت، نتست دختر جان، اون دورترها حیزومای خوبی داره، تازه میخواییم میوه جنگلیم جنگلی هم بچینیم. هوا تاریک شد و مرد همچنان دخترش رو به دور دست ها بعد با خودش گفت، آره، باید اونان رو تا میتونم از اینجا دور کنم. اگه برگردن خونه این زن کلشق یه روز هم توی خونه نمیمونه و میره. خلاصه رفتن و رفتن تا به جایی رسیدن که پر بود از درختان جنگلی. پدر به دخترش گفت خب شما مشغول چیدن میوه بشین تا من برم یک کمی هیزم جمع کنم و زود بر میگردم. مرد از این طریق دختراش رو تنها گذاشت و توی دل تاریکی راه خونه رو در پیش گرفت و ره. دخترا هرچه منتظر مودند خبری از پدرشون نشد که نشد اونا قدری گریه و زاری راه انداختن. ولی دیدن گریه و زاری کردن هیچ دردی رو دوا نمیکنه بنابراین چون خسته بودن یه جای امنی پیدا کردن و خوابیدن حالا این دخترا رو همینجا بذاریم و بریم سراغ مرد و ببینیم بعد از رفتن و جدا شدن از دخترها چیکار کرد مرد رفت و رفت و رفت تا به خونش رسید زن وقتی که دید مرد تنه اومده و خبری از نیست با خوشحالی به پیشوازش رفت و گفت خسته نباشی بیا بیا یه کمی استراحت کن حتما این همه را اومدی خسته ای بذار برم برای دستوی تنور یه نول تازه و برشته بیارم باید گرسنت باشه زن رفت سراغ تنور ولی وقتی بالای تنور رسید متوجه شد هیچ نونی توی تنور نیست دستش رو داخل خاکسترها کرد سرد بود حاجو واج ایستاد و نمیدونست چیکار کنه و رفت پیش شوهرش و گفت ای مرد چی بگم که تنور سرده و هیچ نونی توی اون نیست مرد با شنیدن این حرف فریاد زد دیدی دیدی چه خاکی به سرمون شد رزق و روزی مون رفت خدا میدونه حالا چی به سر دخترای معصوم اومده هر چی میکشم دست تا زن زن حرف شوهرش رو کرده و گفت اینقدر همین چی رو از چشم من نبین شاید خدا از یه طریق دیگه ای میخواد رزق روزیمون رو بده مرد اینقدر عجول نباش اما مرد گوشش به این حرفا بدهکار نبود و نگران حال و روز دختراش بود و تصمیم گرفت به سراغ دختراش بره و اونا رو پیدا کنه. روزها در جنگل گشت هرچقدر گشت دختراش رو ندید رفتم اون جایی که دختراش رو رها کرده بود ولی هیچ خبری از اونا نبود که نبود با دلی اندوکین و ناراحت با دست خالی به خونه برگشته خب حالا بشنوید از سه خواهر افسانی ما خوهرهای بزرگتر با رفتن پدر شروع کردن به گریه و زاری دختر کوچیک به اونا گفت این گری و زاریا هیچ فایده ای نداره بذارین من برم اطراف یه نگاهی بندازم شاید بتونم خبری بیارم دختر کوچیک راهی رو پیش گرفت و رفت نزدیکی های به جایی رسید که در قسمت راست جاده سایبونی درست کرده بودن و کسی هم در اونجا نبود راه خودش رو به اون طرف کچ کرد و گفت شاید کسی باشو کمی آب پیدا کنم وقتی رسید متوجه شد یک کارونسرای قدیمیه که حالا متروکه شده و هیچ صدای آدمیزادی هم به گوش نمیرسه. دختر آروم وارد کارونسرا شد. هنوز چند قدمی بر نداشته بود که پاش به چیزی گیر کرد و با سر بزن خورد بلند شد تا ببینه پاش به چه چیزی خورده خومی رو دید که فقط دستش بیرونه و باقی اون زیر خاکه. با خودش گفت خدایا شاید تو این کوزه آب باشه با زحمت اون رو بیرون آورد تا لبه اون از اشرفی های تلا انباشته شده بود دختر اشرفی ها رو جمع کرد و گفت وای خدای من چقدر اشرفی میرم اینا رو میفروشم و با پولش پیرن و کفش میخرم. همه چیز میخرم. خونه کلفت ها و کنیز ها و یه دفعه یاد خواهرانش افتاد و با دست پاچکی گفت وای خواهرام باید هرچه زودتر بدم سراغشون میرم و این اشرفیا رو با اونا تقسیم میکنم بعد با عجله بلند شد و از راه میون بر به همون جایی رفت که خواهراش بودن از دور خواهرانش رو دید و شروع کرد به صدا زدن اونا ولی دخترها صورتشون رو از خواهر کوچیکشون برگردوندن و قدمهاشون رو تند و تندتر کردند حالا چرا؟ الان براتون تعریف کنم. خواهرای بزرگتر فکر میکردن خواهر کوچیکتر از روی بدجنسی اونا رو ترک کرد و رفته. خواهرای بزرگتر کمی که رفتن پشت سرشون رو نگاه کردند و متوجه شدن که کوزهی رو در بغل داره. وایستاده. و خواهر کوچکتر هم با قدمهای تند و تند خودش رو به خواهرش رسند وقتی دختر کوچیک به خوهرهای بزرگترش رسید نفس نفس زنان گفت چرا هرچی صداتون زدم جوابمون نمی دادین یکی از خواهرها گفت اون چیه دستت؟ کوزه آبه؟ خواهر کوچیک در با خوشحالی و حیجن گفت آب چیه؟ این کوزه پر از اشرفیه خوهرهای بزرگتر با ناباوری پرسیدن اشرفی؟ دروغ که نمیگی؟ خواهر کوچیک تر گفت دروغ چیه؟ بیاین؟ بیای خودتون ببینین دو خواهر بزرگتر فورا کوزر رو از دست خواهر کوچیکترشون قاپیدن و گفتن این اشطفی مال نامزدای ماست تو چطور اون رو دختر کوچی تر گفت نامزد؟ کدوم نامزد؟ شما که نامزد نداشتیم خواهایی بزرگتر گفتن فضولی موقوف تو چیکار به نامزدای ما داری؟ به بعد تهدید کردن اضافه کردن ما داریم میریم نامزدامونو پیدا کنیم اگه یه قدم با ما برداری حسابت رو می‌ذاریم کف دستت حالا هم تو بگیرو برو دختر کوچیکتر گفت ولی من نمیدونم تنهایی کجا برم و چیکار کنم اجازه بدین منم هم راتون بیام اصلا اصلا تمام اشرف یا مال شما دو خواهر بزرگتر با خنده گفتن <تصفيق> مال ما از اولش هم مول ما بود. به بعد به همدیگه اشاره کردن که زودتر را بیفتن و از خواهر کوچیکشون فاصله بگیرن. خلاصه دختر کوچیک افسانه ما تک و تنها موند. خواهرای بزرگترم رفتن و رفتن تا به شهری در بین راه رسیدن. شب رو خونه پیرزنی موندن و به اون گفتن که ما اشرفی داریم. فردا اونا رو میفروشیم و پولت رو میریم. وقتی که صبح شد همه مردم خبر داشتند که چون این اشخاصی وارد شهر شدند و این مقدار هم اشرفی دارن تمام مردم شهر به تماشای اونا اومدن دوتا از غلامای پادشاه با پیرزن ای کشیدن و خودشون رو از اقوام پادشاه معرفی کردند. خلاصه همون دو نوکر اومدن و از دو تا خواهر خاستگاری کردن و اونا رو به زنی گرفتن اشرفی ها رو هم نصف کردند. نیمی از آن دختر بزرگتر و نیم دیگه از آن دختر میانی غلامهای پادشاه که آدمای نااهل و ناجوری بودند ثروت دخترها را به باد دادند و خرج های خودشون کردند و دخترها رو برای خدمت و کنیزی به دربار پادشاه پردن و به این ترتیب دخترها به سزای عمل بدشون رسیدند بشنوید از دختر کچکتر دختر رفت و رفت و رفت تا رسید به کلبهی چوبی آروم در زد صدایی از پشت در پرسید کیه؟ دختر جواب داد منم دختری که نه مادری داره نه پدر و نه خواهره به درد بخوری نه برابری و نه هیچ کسی دیگه خیلی هم گرستن. راه نمیتونم برم در کلبه باز شد و پیرزنی در مقابل دختر ایستاد و گفت بیا تو دخترک بیا تو معلومه که خیلی راه اومدی و ای دختر وارد کلبه شد پیرزن از حال و روزگار دختر بیشتر پرسید و دختر تمام ماجرای زندگیش رو برای پیرزن بازگو کرد پیرزن که دلش برای دختر سوخته بود با مهربونی گفت آه نخور دختر جان اگه پیش من بمونی روزگار خوبی خواهی داشت من سال هاست که آرزوی یه دختر قلبی مثل تو رو داشتم تا اونو برای تنها پسرم که یک ورز زحمت کشه خاستگاری کنم و امروز شکر خدا منو به آرزوم رسون و بعد با خنده گفت <تصفيق> البته اگه تو هم باشی دختر جان دختر سرش رو از شرم پایین انداخت و چیزی نگفت در این موقع در کل به باز شد و جوون رعناو با خوشحالی گفت این پسرمه از سوپ میره سر مزرعه و غروب برمیگرده. دختر آروم سلامی کرد و سرش رو پایین انداخت. پیرزن هم تمام ماجرای زندگی دختر رو برای پسرش تعریف کرد. چند روز بعد دختر ای ما به عقد پسر پیرزن زن درومد و ساریان سال با خوبی و خوشی در کنار هم زندگی کرد افثانه ایرانی سخاهر رو براتون نقل کردن برگرد از کتاب فسون فسانه اثر فرزانه سجاد بود قرز از گردآوری قصه و افثانه که تجارب زندگی گذشتگان به نسل های بعدی منتقل بشه و ما از قصه ها و افسانه ها ابزاری بسازیم تا مهی به سحم خودش بتونه پیروزی نیکی بر بدی و ناپاکی یاور ما بشه از افسان کار مشترکی بود از نویسنده زینت سالفور ویراستار ستار بهار گیویان اجرا مهران دوستی صدا برقرار بهدیه کار تأیید کننده زهرا عبدالله زاده تا افسانه دیگر بدرود